صحبتون بخیر و دلتون پر از آرامش تازه های بهداشت و سلامت این هفته رو خدمتتون عرض میکنم امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره اگر میخواهید زانو درد نداشته باشید به نکات زیر توجه کنید افراد زیادی هستن که از درد زانو رنج بیبرند چه این درد ناشی از یک جراحت تازه باشد و چه ناشی از آرتریت ها راههایی هست که میتوان در بهبود علائم درد برای شما مفید باشد. به یازده مورد از باید ها و نبایت هایی که افراد مبتلا به زانو درد باید رایت کنند در ادامه خواهیم پرداخت حتما به پزشک مراجع کنید اگر دچار درد زانو هستید حتما به پزشک ارتوپد یا فیزیوتراپیست مراجعه کنید. تا او تشخیص لازم را برای رفع درد و درمان بدهد و از ایجاد جراحات بعدی جلوگیری شود. این اولین گام در درمان و رفع درد زانوس. بیش از حد مورد نی... بیش از حد مورد نیاز به عضلاتان استراحت ندهید. استراحت زیاد موجب می شود که عضلات شما ضعیف شوند و درد مفاصل شما از جمله زانو تشدید گردد. بنابراین قبل از هر چیز یک برنامه ورزشی مناسب با وضعیتتان را پیدا کنید تا از ادامه روند ضعف ازولاتتان پیشگیری شود خیلی از دردهای زانو مربوط به ضعف ازولات این ناهی است. اگر از برنامه ورزشیتان مطمئن نیستید و فکر می کنید که ممکن است به زانوهایتان فشار بیاید حتما با یک پزشک یا متخصص ورزشی یا فیزیوتراپیست مشورت بگیرید ورزش کنید. قوی شدن عضلاتی که زانو را تحت حمایت درآورند و همچنین افزایش پذیری کمک شایانی به بهبودی درد زانو شما خواهد کرد. ورزش‌های هوازی و کششی از جمله این تمرینات هستند که بسیار مؤثر واقع می‌شوند. روی، شنا، ایروبیک در آب، دوچرخه‌ای ثابت جزو تمرینات هوازی به شمار می‌آیند. از پله تا حد ممکن اجتناب کنید. تا جا که می توانید از پله استفاده نکنید و اگر مجبور به بالا و پایین رفتن از پله هستید حتما از نرده کمک بگیرید و یا یک تکهگاه مانند اصا برای تحمل وزنتان انتخاب کنید اگر از بالای یک قفسه می خواید چیزی را بردارید و باید به بالای یک چارپای بروید حتما قبل از بالا رفتن از یک تکهگاه استفاده کنید و فشار وزنتان را رو روی آن بیاندازید. از چهار انصر یخ یخ یخ فشهده سازی بالا نگهداشتن زانو و استراحت استفاده کنید. اگر زانویتان دچار جراحت شده و یا دچار ورم مفاصل هستید از این چهار انصر قافل نشوید از یخ برای کاهش ورم استفاده کنید، زانوهایتان را با کشش های مخصوص زانو که در داروخانه ها موجود است فشرده کنید به زانوهایتان استراحت دهید و نگذارید که زانو به مرحله آستانه درد برسد. پاهایتان را، بالا نگه دارید این کار سبب تقویت ازولات زانو می شود از وزنتان قافل نشوید وزن شما تأثیر بسیار زیادی در کاهش و افزایش درد زانوهایتان دارد اگر دچار اضافه وز هستید حتما به فکر باشید و در اولین فرصت آن را کاهش دهید. چرا که وزن بالا فشار زیادی به زانوها می آورد لازم نیست حتما به وضع ایدئالتان برسید با کمی کاهش وزن تغییرات زیادی را مشاهده خواهید کرد از یک عصا استفاده کنید از اینکه از یک تکهگاه یا عصا برای اینکه فشار کمتری به زانوهایتان وارد شود استفاده میکنید خجالت نکشید این کار کمک زیادی به کاهش استرس و فشار به زانو خواهد کرد استفاده از زانوبندهای طبی نیست بسیار مفید است از طب سوزنی برای کاهش دردتان استفاده کنید. طب سوزنی یک روش مداوای چینی است که برای کاهش بسیاری از دردها از جمله درد زانو بسیار موثر است. اما فقط با مراجعه به مراکز معتبر از این روش استفاده کنید. از کفش مناسب استفاده کنید. استفاده از یک کفش مناسب با یک کفیه طبی می تواند فشار را از روی زانوی شما کمتر کند. پزشکان کفی های خاصی را برای بیماران مبتلا به زانو درد تجویز میکنن برای آگاهی از اینکه از چه نوع کفی استفاده کنید حتما با فیزیوتراپیس یا پزشک معالج خود راهنمایی بگیرید از یخ و گرما استفاده کنید در 48 ساعت الی 72 ساعت اولیه پس از جراحت از کمپرس سرد استفاده کنید کمپرس را درون حوله بگذارید تا به پوستتان آسیب نزند توانید از یک کیسه یخ برای این کار استفاده کنید پس از این مرحله یک حمام آب داغ بگیرید و یا از کمپرس گرم استفاده کنید هر دوی این کارها را سه الا چهار بار در روز به مدت پانزه الا بیست دقیقه تکرار کنید و آخرین مورد مواردی مورد هستش که مراقب تکانهای سنگین باشید از انجام ورزش های سنگین که سبب ایجاد فشار به زانویتون می شود، اشتناب کنید. ورزش های مانند دویدن و پریدن فشار بسیار زیادی به مفاصل می آورد. همچنین تمرین های مانند اسکوات و لانگز موجب فشار های زیادی به زانو می شود. و اگر درست انجام داده نشود، آسیبی بسیار زیادی به زانوهای سالن می آورد. بعدی که براتون در نظر گرفتم، جدیدترین تحقیقی است که دانشمندان میگویند شروع کار قبل از ساعت ده صبح کارمندان را بیمار و مسترب می میکنند. بسیاری از دانش آموزان، کارمندان و دانشجوان از کمخوابی رنج میبرند و این مسئله بر روی کارایی آنها تأثیر زیادی داشته است این موضوع دانشمندان را وادار کرده تا تحقیقی در مورد هماهنگی یا عدم هماهنگی ساعت طبیعی بدن و ساعت شروع فعالیت افراد انجام دهند دکتر پال کرلی محقق دانشگاه آکسفورد است وی بر اساس تحقیق، نتایج تحقیقش میگوید که مجبور کردن کارمندان و دانش آموزان به کار و در کلاس نشستن معادل شکنجه است او میگوید این کار کارمندان را بیمار خسته و مسترب می می‌کند او معتقد است قبل از سن 55 سالگی ریتم شبانه روزی بدن بزرگسالان با کار کردن 5 الی 9 ساعت هماهنگ نیست و همین مسئله یک تهدید جدی برای سلامت روانی این افراد به شمال می روید. بنابراین لازم است که یک تغییر کلی در ساعت شروع کار و مدارس که هماهنگ با ساعت طبیعی بدن انسان باشد انجام شود. آزمایشاتی که بر روی ریتم شب روزی بدن انجام شده است نشان میداد افراد ده, سا... ده سال قبل از ساعت هشت و هشت و نیم نمی توانند تمرکز دقیقی بر روی مسائل علمی داشته باشند. همچنین افراد شانزده ساله برای بهترین بازه در طول روز باید از ساعت ده صبح شروع به یادگیری کرده و این مطلب برای دانشجوان در ساعت 11 صبح صادق است. و تحقیق جالب درباره قلب چگونه بفهمیم قلب ما مشکل دارد. فهمیدن مشکلات قلب قبل از آنکه اتفاق بدی بیفتد بسیار مهم است. با در نظر گرفتن علایمی که میگوییم تقریبا میتوان منامنظم بودن قلب را تشخیص داد به گزارش علم و مشکلات قلبی میتواند پنهان، ناگهانی و بدون هشدارهای ظاهری سراغ شماید. پروفسور کریهیسلید از دانشگاه قلب کلرادو میگوید نشانه و علائم مشکلات قلبی مخصوصاً برای زنان همیشه از یک قاعده خاص و مشخص پیروی نمی کند. در این علائم در این مطلب علائمی را برایتون توضیح می‌دهیم که می‌تواند یک هشدار در خصوص سلامت قلب باشد. درد قفسه سینه، فشار شدید در قفسه سینه مانند احساس وجود یک شی سنگین بر روی سینه برای تمام افراد یک زنگ خطر است. در صورت بروز هر گونه فشار در قفسه سینه با اورژانس تماس بگیرید. این دردگاهی به به شانه‌ها، بازو گردن و فک هم گسترش پیدا می‌کنند درد قفسه سینه بعد یا حین انجام فعالیت روزانه یا استرس می‌تواند یک سیگنال برای مشکلات گردش خون باشد تنفس کوتاه اگر فعالیت سبک باعث از بین رفتن تنفس شما می‌شود مثلا به راحتی قادر به بالا رفتن از یک سری پلکان نیستید این یک مشکل اساسی است کافی است توانایی و فعالیت امروزه‌ای خود را با یک یا دو سال قبل مقایسه کنید اگر متوجه تغییرات اساسی در تنفس و توانایی بدن خود شدید این میتواند علائم شروع یک اتفاق مهم باشد مشکلات تنفسی که حتی هنگام دراز کشیدن سراغ شما می آید جدی بوده و در آینده مشکل ساز خواهد بود این میتواند نشانه مشکلات دریچه قلب باشد پس با پزشک خود مشورت کنید علائم شبیه آنفلانزا احساس تعوی یا خستگی، تجربه سرماخوردگی و عرق سرد و مرتوب می تواند نشانه های جریان خون ناکافی باشد. شاید هر کسی دوچار این علائم شود، اما اگر بعد از فعالیت بدنی دوچار این علائم شدید، با دکتر متخصص مشورت کنید. ناراحتی شدید معده می تواند یک پرچم قرمز باشد. تحقیقات نشان می دهد برخی از زنان چند روز قبل از حمله قلبی مشکلات سوی حازمه داشتن متاسفانه این افراد نمی دانند که مشکلات حازمه ای را با حملات قلب ارتباط دارند بنابراین دنبال راحل و درمان نمی باشند گیجی بر اساس نتایج دانشگاه کاریرونهای شمالی احساس گیجی، سردرگمی یا کسل بودن می تواند نشانه انصداد یا مشکلات مربوط به دریچه قلب باشد. مخصوصا اگر این موارد با احساس لرزش، نبز تند در قلب همراه باشد. خستگی یا بیخوابی بر اساس گزارش دانشگاه آرکناس بسیاری از زنان در طول هفته‌ای که موضع به حملات قرب شدند، به شدت احساس خستگی کردند. و همچنین افراد مشکلات خواب و بیخوابی را گزارش کردند. و اما نکته پایانی، سعی کنید هیچ دردی را نادیده نگیرید و به سادگی از آن نگذرید. درد صدای بدن است و یک نشانه از وجود اختلار در عملکرد بدن یا یک بیماری سعی کنید قبل از اینکه این, این درد برای تو مشکل ساز شود سریعا پیگیری شوید تنتان به ناز طبیبان نیازمند مباد تندروسیتون پایدار.